فصل 4 آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسهها ها امتحان کند عیسی چهل شبان روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگ ها نان بشود عیسی در جواب گفت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 اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی همه اینها را به تو خواهم داد عیسی به او فرمود دور شو ای شیطان کتاب مقدس می‌فرماید باید خداوند خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی آنگاه ابلیس عیسی را ترک نمود و فرشتگان آمده او را خدمت کردند وقتی عیسی شنید که یحیا بازداشت شده است، به استان جلیل رفت، ولی در شهر ناصره نماند، بلکه به کفرناهوم که در کنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است، رفت. و در آنجا ماندگار شد و با این کار سخنان اشعیای نبی تحقق یافت که می‌فرماید. زبولون و نفتالی سرزمین هایی که در مسیر دریا و آن سوی اردن هستند جلیل در قسمت بیگانگان قومی که در تاریکی به سر میبرند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکنن، نوری خواهد درخشید عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت توبه کنید. زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. وقتی ایسا در کنار دریای جلیل قدم میزد، دو برادر یعنی شمعون ملقب به پتروس و برادرش اندریاس را دید که تور به دریا میانداختند، زیرا آنها ماهیگیر بودند. عیسی به ایشان فرمود دنبال من بیایید تا شما را سیاد مردم گردانم. آن دو نفر فوراً تورهایشون را گذاشتن به دنبال او رفتن. عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود زبدی در قایق نشسته مشغول آماده کردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خوان و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک کرده به دنبال او رفتند. عیسی در تمام جلیل میگشت، در کنیسه های آنها تعلیم میداد و مجدی پادشاهی خدا را اعلام میکرد و بیماریها و ناخوشی های مردم را شفا میبخشید. او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند، و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او میآوردند و او آنان را شفا میبخشید جمعیت کسیر نیز از جلیل و دکاپولس از اورشلیم و یهودیه و از آن سوی اردن به دنبال او روانه شدند